حتی دیدار آخر شاید رسید از راه بردای یه روزه بهتر بلک هوادارت چون بلدی بخندی با چشم دل ببازی با دل ببندی اجما که به سبزه پیچیه توی دنیا از اوج موج شادی، صفر دمو پس فردا، چشم وا کن قلب سبز چیزی در سوی دنیا، از اوج موج شادی، تا فردا, و پس, فردا. شادی تا فردا و پس فردا. سلام به همگی، حال احوالتون چطوره؟ فرشید منافی هم اینجا رادیو پاس فردا، شماره 953، روز پساگلدا، سه‌شنبه اول دی ماه 1394 با شما هستیم خوب خوشین چه خبره؟ خوش میگذره. دیروز چه کردی ما واقعا دیروز چه کردی دا؟ واقعا شبیه علدا. ولی حالا خودمونیم که این نه سه ساعت رادیو پس وارد گوش دادیم گوش ندادیم اصلاً. اصلاً درگیر علدا بازی خودتون می‌دونید ولی ما بر خودمون یه چیزای می‌گفتیم دیگه. ابتدا ما که خویی انتظار نداشیم. عین سه ساعت رو دست به سینه درست کوتون بچینیم مثلا پای رادیو پس وارد. ولی خب سر جم تی دو ساعتشو که قشنگ با تمرکز گوش دادیم دیگه. ای بابا اونم نه؟ آه شبه بود حرف می زدیم با هم می خوردین به ما نبوده اتماله خب شبه یلده بسن همینه دیگه عیب نداره حالا برنامه رو هم روی سانت کولاد گذاشتیم کل سه ساعتشو هم روی کانال تلگرام لینکش روی صفحه فیسبوک هم هست ببین سر فرصت با تمرکز و قشنگ گوش بدین ببین امتحان بدین اینجا یعنی با عرق جبین کد بهمین به خود ساختیم این برنامه ها رو برنامه‌ها رو باور کنی در فرصت کم البته چون هر روز شما منتظر رادیو پاسوردهای روزانه خودتونم بودین دیگه نمیشود که نریم خلاصه دم همه بچه‌ها گرم واقعا از کامران و فریبرز و شرمین بگیر تا شهرام، سامی، جلال، شراگیم که سنگ تمام گذاشتن واقعا همه گی زحمت کشیدن دم همه گی گرم کلی هم تلفن داشتیم متاسفانه همه رو فرصت نشد پخش کنیم فعلا یه تعدادیش رو به همراه هنرنمایی یلدایی ما دور بشنوین یه توضیح بدم موسیقی یلدایی رو سعید از ایتالیا که به زودی به جمع ما میپیونده ساخت دقیقا بکنم دو روزه ساخت دیگه آخرین بار بشنوینش بعدش دیگه میذاریمش رو سانت کلاد و اینا واسه یلده های بعدی شاید به دردتون خورد دیگه باز شب اومد شب اومد شب اومد شب باز تب اومد شب همه همگی مبارک باشه شب یلده رو به شما و همه پس فردایگه تبریک میگم اب سیاهه یلدا واخ چه ماه یلدا اینجا دلال و چه رو به راه گلد چه رو به راه یلدا هندول ها پاره اند آجیلا بیچاره ام انار دون کرده رو مهمونای این کاره مهمونای کاره ها. یه مشو مشت و سنگه نره مرغ و کباب و تحچی بیا شب رژیم نداریم به برمایین دیشب بود. بردار بیار کنار دستت بذار یلد و بیپار حافظ اصلا به فکر نیار ترسی بودش یک زمون جمع شدیم دور اون یلد بود و کنارش دسته و ساز و بزغون سلام فرشید جان شب یلده همه مبارک اینجا بود مراسم زیبای شب یلده در امارت گلشن جای همه اینکه خالی رضا سهر شید جمش سیاه یلده چه ماه یلده اینجا دلا روشن چه رو به راه یلده چه رو به راه یلده این شامه مشت و سنگی و ترچیم این شب رژیم نداریم بفرمایید جا رشیم حافظ و بردار بیار کنار دستت بذار یلدا بیفار حافظار اصلا به فکره نیار دلدای خوب با فردا یا رادیو پس فردا با فرشید منافی کجا یه دنیا هر جا مست بگو راست بگو تا شب یلداست بگو تو نفسی هست بگو هرچی چی دلت خواست بگو خسته و بیتاب تاب شدم به شبش سیاه یلدا آخ چه ماه یلدا اینجا دلدارو چردم چه رو به راه یلدا چه رو شبش سیاه بسته دیگه بابا الان دیگه همه دارن یلدا کهیر میزنن خودم هم دیگه یلدا رو از صدای خودمون دیگه کهیر زدم دیگه بسته دیگه ما به این بهانه میخواستیم یک بار دیگه دیگه آخرین بار بود دیگه با باور کن چون دیگه فرصت دیگه نمیشه پخش کرد دیگه گفتیم پخش کنیم دیگه راستی صبح چی کار کردین بیدار شدین؟ سر موقع رسیدین سر کار مدرسه هم که میدونم خیلی جاها تعطیل بوده به حال این دودودان واسه همه اگه بد بوده این واسه این بچه مدرسه یا انگار اومد داشته ناخلا امیدواریم حالا رو سلامتیشون اثر منفی نذاره موظبه خودتون باشین روز پاسیال‌داتون هم مبارک باشه شب پاسیال‌داتون مبارک باشه برا خیلی روز و شب مهمیه این روز و شبگی پسیلدا یلدا واقعا آقا حقش دیروز هم گفتیم به تقویم تعطیلات رسمی اضافه بشه دیگه به خدا اما بگذاریم امروز در آخرین برنامهمون با موضوع شب میخواییم به مصائب و مشکلات شبانه مردم رسیدگی کنیم مشکلاتی که بخش اعظمی از اونا مربوط به خواب و اختلالات خواب میشه بخش دیگرش هم به ترس قدیمی ما از تاریکی برمیگرد ترسی که حالا با ظهور انبوه اقسام لامپ ها و چراغ ها با و اینا البته حالا کم تر از گذشته شده ولی خب هنوز وجود داره و ایجاد روبو وحشت میکنه گاهی پس قبل از اینکه بریم سراغ برنامه برنامه‌ریزی می‌خوایم که همین اول راه یک سلام مخصوص بکنیم خدمت همه اون دوستانی که آبشون با شب توی یه جوب نمیره و به شکلی خلاصه دوچار مشکلات شبانه هستن بعد دیگه سامی خوبی تو؟ خوبم ردیفی آماده‌ای ردیف. الان؟ ردیف ردیف. شب تغییری در خودت احساس نکردی این همه انار و هندون خوردی هیچ اتفاقی نیفتاد نا. خیلی هم خوب بود انار و هندونه خوردی مشکل عالی بود جلال جان تو چی خوبی منم خوبم جلالم خوبه, منم. جلال خوبه. بچه ها خوابن یعنی نصفه می‌خوان دیگه الان همین برنامه تموم شد بریم تو رختخواب خب دیگه بچه‌ها به هر حال خوبن همگی و بریم حالا سراغ برنامه‌مون رو برو بریم دیگه برو برو برو برو, برو من از تو هم تعریف میکنم گل پسر قربون تو برم یک خواهجی یا شم سال شریعه لارو وید به بیت برم وزیر کرسی به هر حال خوشی باشیم و یلدایی بگیریم میخواستم فقط با شما دوباره هماهنگ کنم بلد. این برنامه رو من نمیتونم آنلاین گوش بدم فرشی جان خب خیلی دیگه اونجا فقط یه آخه. کاری بکنید که ما بعداً بتونیم دانلود بکنیم و برنامه شب یلدا رو دوباره پسرم گوش بدیم تو هم بی تیریمی تو هم باوشی قربونت ورمَن این فکر کرد ما حسودی کردیم از آقا تعریف کرده بودن گفته بودن باوشی اینا فکر کرد ما ما حسودی نمی کنیم با شما چکاتون سر موقعه پاس فقط اکبر جان همه چی حله بچه‌ها برنامه که شب یلدا سه ساعت ساعتش همون دیشب ما فرستادیم تو پکیج پوزی با دیچال فرستادیم خدمتتون یعنی شما اصلا دانلود کنی که چکات شما پاس کن ردیفه قربونه اما چند وقت پیش گزارش از خرید و فروش عصب بله عصب خرید و فروش عصب توی شهر یزد از تلویزیون ایران پخش شد حقیقتش نگاه ما رو یه خورده تغییر داد به این دنیا گوش کنینم و اومده هم, هم بیمینیم هم اگر خوداشو خوشمون اومد برای حسب دلالا و واسطه ها خوزشیم 185 ملیون تومان قیمت پایی از 328 تومان یا خدا یعنی الان ما دوچار کلی سوالات فلسفی اقتصادی اجتماعی شدیم یعنی تو مملکتی که قیمت دیه یه آدم بالغ 150 میلیون تومن آقا چه جوری قیمت پایه پایه‌ای از 328 میلیونه بعد این اسب چی کی بعد بعد چی چیکار میکنن باهاش سوارش میشنن یا قاب میکنن میزنن گوشه استبل نمیدونم البته خب با خریدار این اسب 328 میلیونی هم که یه جوون به نظر می‌اومد یه جوون 16 17 ساله اینا بود صحبت شد در مورد خرید این اسب هم اینجوری جواب دادن. ما میست برای بود. خوششون می اومد از اسب. بله. اوکی. میست برای تفریه بود. خوششون می اومد از اسب. دیگه همینجوری 330 میلیون دادن. حالا اینکه پدرشون چیکار کارو هستن و برای تفریح همینجوری 330 میلیون پول میدن برای قنده اصلشون اسب بخرن. دیگه اون خودشه داستان دیگه از ما به ما چه. به ماچ نوش جوش. سلام فرید منافی من با رو تو هموم گوش کرده بودم تو چی گوش کرده بودم سر کار کرده اصلا بودم. اصلا گوش کرده بودم همه جا گوش کرده بودم ولی تا حالا تو گرمای 36 درجه یه, یه سواحل زیبای پاتایا در حال اوج گرفتن گوش کرده بودم من شوهر هما این هم <تصفيق> <تصفيق> آقا همه خودش کجا دستو آقا ادم میره پاتایا رادیو پس فردا گوش میده خنگی دیگه حتی همه چه وقت به شما گفت آقا، خانوم، دختر خانم، آقا پسر، خصوصا دختر خانم ها و خانم ها دقت بفرمایید. دیروز توی مراسم انتخاب دختر شایسته جهان یه اتفاقاتی افتاد اصلا در کل تاریخ و حتی قبل از تاریخ هم بی سابقه بوده. داستان این بوده که مجری مراسم یعنی جناب استیو هاروی که خب کمدین و مجری خیلی معروف شناخته شده ای هم هستن، آمریکایی هستن. ایشون آخر مراسم دختر شایسته جهان که همه چی تموم میشه دیگه میخوان معرفی کنن این دختر کلمبیایی رو دو نفر مونده بودن یه کولومبیایی فیلیپینی دختر کلمبیایی رو که بعد شما نباشه خیلی هم خانم خوشکدی بودن ایشون به عنوان دختر شایسته سال 2015 اینجوری اعلام میکنه موس یونیورس 2015 از بله بعد تاجو خیلی شیک مجلسی بردن گذاشتن رو سرش گلبش دادن ایشون هم خوشحال خندون اصلا نمیدونی مشغول جزت کرفتم برای عکاسا شد یه دفعه چند دقیقه گذاشت از اتاق فرمان به مجری مراسم خبر دادن که در واقع اسم نفر دوم رو اول اعلام کرده و عنوان دختر شایسته سال در اصب به دختر فیلیپینه باید میرسیده حسنا تو مجلسید the first is Miss Universe 2015 خیلی ها خیلی اصلا آقا هیچ چی دیگه دوباره با سلام صلوات تاج دختر شاهیستر رو بیچاره از روی سر دختر کلمبیاییه برداشتن گذاشتن رو سر دختر دختر فیلیپینیه بعد ها رو میدیدی خیلی شرایط بدی بود یعنی من جای موجی مراسم بودم میفهمیدم به چنین سوتی ازمایی دادم از همونجا یه فرار میکردم میرفتم پشت سن بعدشم میرفتم اصلا کلن یه کشور دیگه درخواست پناهندگی میدادم البته ایشون هم یه جورایی بعد از این که معذرت خواهی کردن همین کارم هم انجام دادن رفتم پس پشت مخفی اخوی شدن میگه روی کارت نوشته بود و من خوندم. من خودم. میگه اشتباه من بود دیگه بعد بخ انقدر معذرت خواهی کرد کشت خودشو گفت اینجا روی کارت نوشته بوده من اشتباهی خوندم و من این مسئولیتشو به عهده میگیرم و به دختر رو, رو نزدارین نمیدونم من خیلی معذرت میخوام آقا و اینشون دیگه از شبانه روز اصلا دیروز همینجوری داره فقط ازخایی میکنه اما تا حالا حالا فکر کنم باید ادامه بده ما هم از همین تریبون یک بار دیگه از طرف خودمون و بچه های راژیو پسفردو از این خانم کولومبیایی ازخایی میکنیم سامی خصوصا خیلی داره ازخایی میکنه جلال خیلی ناراحتش شده اصلا اصلا حسابش ریخته به هم دیگه پیشناهات میکنیم استاد مشایخی هم هرچه سریع به این قضیه ورود کنن بلکه این ازخایی ها بلاخره به سمر بشینه این خاطره تل خضیات ها بره دیگه <متصفيق> شب گلده هر چه می دانید به می نمایی. به نظر ما شب گلده بسیار شب خوب و زیبایی است چون تنها شبی در سال است که پدر بزرگ و مدر بزرگ مدری پولدار من ما و خانواده ما را به خانهشان راه می دهند. لازم به توضیح است که پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری با ازدواج مادر و پدر ما بوده اند و بعد که مادر بزرگترین اشتباه زندگیش را انجام داد و با پدر گداگوشنی ما ازدواج کرد آنها مادر ما رو از ارث محروم کرده ریخت هیچه که از ما رو نمی ببینند تو همین چند سال پیش که مادرمان فهمید با ازدواج با پدرمان چه اشتباهی مرتکب شده و بعد از اظهار گوکولی غلط کردن به اولیاوش آنها فقط قبول کردن که در میهمانی های شب یلدایشان ما را هم دعوت کنند و اجازه به همین مناسبت بود که پارسال در شب یلدا ما شلوار عیدمان را پوشیده به همراه پدر و مادر و خوهرمان به منزل آنها رفتیم در ابتدا که به میهمانی وارد شدیم فکر کردیم که این مجمع عمومی سازمان ملل که همین همینجاست از بس که آدم در آنجا بود. در ابتدا بعد از این که ما با همه میهمان ها به صورت تک تک صداملک کرده روستی نمودیم به حمام رفتیم و گرفتن یک دوش تمام ماتیکا و که به سر صورتمون موالید شده بود شستیم در رای خروج از حمام بودیم خانمی که مادر گفته بود مادرش است و ما ایشان را جلوی جمع عزیز جون صدا می زدیم جلوی در ما را گرفته به ای برد و بعد از بررسی چند نقطه از بدن ما از اینکه چند جای ما شویه دایی های من بود خوشحال شد و ما رو به نوگی وزیر و پس از این ما به وسط مهمونی رفتیم و دیدیم که از پشت چند کپه پوست تخمه و میوه می چفت را رو دید که مشغول معاملات مختلف بودند دایی کوچکمان داشت تلاش می بینزش را به پسر عموی خاله جبد پدریش دو تا بار از تیراهنهای او را ارزان بخرد پدر بزرگ عزیز داشت تلاش میکرد برادر کوچیکش را راضی کن از زمین کلاردشتش را به جای آن همه کمک فکری که او در زندگیش به او کرده بود به او بدهد دختر اموی بزرگ داشت. آدرس تاتویش را به خوهر عزیزمان می دود و زندوی وسطی هم از اینکه این دکتر جدیده بهش قلده یه جلق جدید خارجی توی لبهایش تذریخ خوند خیلی خوشحالی می داد. در پایان از این انشان نتیجه میگیریم که آدم می تواند در شب گلده در حالی که یک دستش ران مرغ و دست دیگرش قچ هندوانه است محاملی زمین و تیروهن هم بکند و یلدهاش را هم به جا بیاورد توی تو می منو بریم سراغ برنامه امشبمون با موضوع دردسرهای سرهای شب از سکت زنی در تاریکی تا تلاش برای ندیدن کابوس های شبانه بیانی شماره گه 953 بدانید و آگاه باشید چه شب همانند یک شمشیر دودم است و همانقدر که میتواند باعث آرامش و آسایش شما باشد می میتواند با مجموعی از ترس ها و کابوس ها و بیخابی ها زندگی شما را تبدیل به جهنم نماید پس چنانچه از آن دست افرادی هستید که دوچار حراس از تاریکی بوده و یا با خواب شبانه دوچار مشکلات جدی هستید همانا به یکی از بزرگترین مسائب زندگی دوچار شدگانید امزاو جمعی از همیشه دوجاره بیخوابی شده ها به محض خوابیدنم صد جور در حد فیلم اره 6 دیده ها و همیشه هم با داد و فریاد و جیغ و گری از قاپریده های رادیو پس بفاک داک داک داک داک قدیم یکی از رایج ترین مشکلات در شب مشکل بیخوابی بوده حالا این بیخوابی یا بر اثر عامل خارجی مثل سر و صدای همسایه، کردن نزدیکان و اطرافیان و چه میدونم یا مثلا بر اثر عامل داخلی که شخص خودش با بخوابیدن مشکل داره ما از عامل خارجی الان شروع میکنیم براتون مسئله رو حل کردن برسیم به عامل داخلی ببینید برای مقابله با بیخوابی ناشی از سر و شبانه بهترین کار رفتن سراغ سرچشمه و از بین بردن منشی صداست دیگه یعنی اگه مثلا سر و از طرف همسایه باشه چکار میکنین؟ خیلی محترانه پامشین میین در خونه همسایه رو میزنین خواهش میکنین که دلیل کاریشونو بذارن برای فردا صبح یا مثلا برین خواهش کنین که تو مهمونی یا تولد یا پارتی یاا هر چیزی که دارن یکم و داد و فریاد بکشن ها؟ یا بعضی وقتام هست که خب سر و صدا ایجاد شده توسط همسایه مربوط به شب بخیر گفتن شونه. بله، ممکنه خب شب بخیر گفتنشون صداش زیاده. خب اونجا هم شما باید حجاب و رو بذارید کنار و با جو اقتدار برین در بزنین، خواهش کنین ازشون با وای یواش‌ترم شب بخیر بگین دیگه مزاحبه خام شما نشن دیگه. اه. خوبیه اینکه شما مستقیم برین اعتراض کنین که یا به هر اینجوری یا صدای قطع میشه یا نمیشه دیگه. اگه قطع شد که شما به هدف تو رسیدین هیچ فبه. ایارم قد نشد چیزی رو از دست نمیدی ها پلان بی رو اجرا میکنین که همون چه پوندن پنبه از مالجیلنه کهنه یا هر چیز دیگه ای توی گوشاتونه البته تو در مورد سر و صدای ناشای از خورپوف عزیزان خب شما نمیتونی به فرض چه میدونم مثلا همسرتو از خواب بیدار کنی بهش بگی خورپوف نکن که نمیتونی که یا مثلا بعد علکی مثلا یه تکونش بدی واسه خورپوف نکنه و دوباره شروع میکنه یعنی که میگم نه که نتونی بیدارش کنی یا میتونی و این خواه عملا چیزی تغییر نمیکن دوباره شروع میکنه به خورپوف کردن اینی که در اینجور مواقع از همه اول پلن بی رو اجرا کن چیز بچپون تو گوشت راحت بگی بخواب دیگه بالا خانوما خیلی خوب درک می‌کنن بین پنج تا 7 ماه در شب مجبوری ی یه وری بخوابی به خاطر اینکه داستان میشه دیگه تاقواز بخوابی یه داستان داره در نتیجه بعد به پهلوی چپ یا راست بخوابی که اونم هر 7 ساعت 6 صد وقتی می‌خوابی یا یه طرفت خواب رفته یا حسابی کوفته شدی در نتیجه هر ماه بین 5 تا 7 روز من فکر می‌کنم که چی میشد ما زنا هم مثل دایناسور تخم می‌ذاشتیم بله من کاملا درک میکنم. چرا من باید کاملا درک کنم نمیفهمم و همینطوری فقط خواستم یه درکی که داشته درک متقابل داشته باشیم از هم خیلی متشکرم از تماستون و کاملا حق با شماست و من هیچ درکی از این که شما گفتین من ندارم هیچ کدوم از مردای دیگه هم ندارن متاسفانه اما خب غیر از این که خیلی تلفن داشتیم دیروز و بابت شب گالدا خیلی تشکر کردیم خیلی کامنت داشتیم تو اینستاگرام تو فیسبوک پای ویدئویی که ساخته بودیم بابت همین موسیقی که اول برنامه پخش کردیم ویدیو رو البته توی تیترجیش هم هست مهرسا از لندن زحمتش کشیده بود دستش درد نکنه اما تو فیسبوک امیرالی سجادی گفته فرشی چرا فایل دانلود یک ساعت از سایت رادیو فردا گرفتم. والا ما فایل دانلود کل برنامه رو سه ساعته رو همه جا گذاشتیم. احتمالاً طبق معمول همیشه خب به خاطر اینکه برنامه یک ساعت است توی رادیو فردا هنوز دوستان این تنظیماتش رو درست نکردن. حتما میگم بر بچه بچهای فنی میگیم بهشون که درستش کن. سامی جان اینو اگه میتونی بعد بگو که این رو میتونن سه ساعتش هم توی رادیو فردا هم توی سایتش باشه. ضمن اینکه مهرنوش مامان مرزی، مریم سارا ستاره موال، عباسانی، محمد رضا علی پینک جاله شادی فرشته علی پیر حسینلو الهه طاهر سلطانی اینا همهشون از برنامه تشکر کردن شب یلدا رو تبریک گفتن و از اینکه آرتا اومده بود توی برنامه خیلی خوشحال بودن و خصوصا بخش آرتا روانشناس اجر کردیم و با آرتا گپ و گفتی داشتیم و کلند خیلی تشکر ی بوده همه چی یعنی هایی نبود که حالا بخوام دونه دونه کامنت ها رو بخونم منم خواستم از همین جا از همه شما تشکر کنم آخو مجبورم کردی دوباره به رنگ بزنم فرشید جان آخ آخ همشم به خاطر این آرتا بود الان ادامه آه... برنامه دی تو شنیدم خیلی خوشحال شدم من از این عاشقان آرتا سینه آرتام خیلی کار خوبی کردی دوباره اوردیش تو برنامه امودوارم که تو این فصل آخری بیاریش تو این سر ماه واقعی مونده باش و ما لذت ببریم دمت گم چقدر خوب شد این آیتم آ... آرتا دوباره برگشت. عطا اسمش میاد من لکنت زبان میگیرم امیرم از تو جاده مرسی برنامتونم عالی بود مرسی از همگی البته این آیتم item آرتا برنگاش که آ ویژه ویجی بود برای شب یلدا و از آرتا هم دعوت کردیم به عنوان مهمون ویجمون توی برنامه بود و علاوه آلتام کار زندگی خودش داره دیشبم توی برنامه صحبت کردیم به حال درگیر کارهای دیگه تو رادیو فرداست اما خب چرا که نه توی نوروز هم یه آ دیگه با آرتا داشتیم هر ها؟ اما اه، بریم سراغ چی الان بریم؟ الان سراغ چی بریم؟ هیچی دیگه سراغ چیزی نمیریم، فقط راه ارتباطیمونو میگم پس فرده ات راژیوفردو.com ایمیلمونه دو و ماست، از طریق اپلیکیشن رادیو پس فردا البته میتونن صدای ما رو بشنوند و دانلود بکنن صداشون رو به گوش ما برسونن رادیو فردا رو هم میتونید زنده از همونجا بشنوید و در فیسبوک گوگل پلاس ساوند اینستاگرام میتونید ما رو فالو کنید برامون کامنت بذارید تلفن های ما دو سف چار و دو یازده بیست و چهار سد و سی آیا چیزی چیز رو میخوام تعریف کنم چند وقت پیش یک عالم جلیلالقدری خب یک صحبتهایی فرمودن در مورد چیزایی که در برخورد با خانومه ها مکروهه و آقایون باید ازش پرهیز کنن موارد مسئله دار از نظرشون ایشون توی سه چیز خلاصه میشد یکی سلام کردن به خانوم سلام سلام علیکم تعرف کردن به خانوم و نشستن روی صندلی خانوم بله این سه تا چیزیه که ایشون توصیه کردن گوش کنین تا متوجه بشیم حالا داستان چیه بعد توضیح میدن ابتداءن انسان به خانم ها سلام نکنه البته اگر اونها سلام کردن جواب سلامشون در صورتی که مقصده نداشته باشه واجبه ولی خود انسان ابتداءن به خانم ها سلام نکنه بله خب پس در مرحله اول حوسن باشه آقایون نباید به خانم‌ها اول سلام کنن مثلا اگه میری چه میدونم توی شرکتی اداری جایی می‌بینی یه خانمی اونجا نشسته اول خیره میشی تو چشماش که طرف مجبور شه اون خودش سلام کنه با سلام. سلام و بعد اگه سلام کرد حس کردی مفسده‌ای در کار نیست جواب سلامش رو میدی مثل من که الان جواب سلام دادم اگر هم دیدی طرف خیلی خوشگل احتمال مفسده میره حتی همونم هم جواب نمیدی فقط کارتو میگی همینجوری میری سری مثلا اون پرونده منو بده به برم پیش آقای فلانی وا... والا این از اداره موقع تلفن زدن هم حواستون باشه تلفن یه وقت میزنین دیگه ها وقتی زنی میزنین جایی اگه خانمی گوشیو برداشت شما به هیچ وجه سلام نکنین قط کنین دوباره بگیرین بله بفرمایی بذار بذار گوشیو آره یا مثل اینایی که کسی رو گروگان گرفتن حالا پول میخوان صاف برو سر اصل مطلب وقتی زنی زدیم مثلا بگو ساعت و چهار بعد از ظهر دفتر آقای سلطانی جلسه داریم همین بعد گوشو سری بذار مسئله دوبام است که فرمودن کراهت داره دعوت بانوان به قضایی که انسان داره میخوره شما یه جا نشستی قضا میخوری مثلا یه خانومی هم داره رد میشه دعوتش کنیم مثلا که برای خوردن قضا کراحت داره و در مورد زنهای جوان کراحت بیشتری داره کو خب این ببین این خوبه میدونی آقا به خدا من یه مش پسته میارم اینجا گاهی قبل از شروع برنامه بخورم از جلوی در رادیو تا تو استودیو باید به همه همجور راه برم تحارف بزنم نمیشه که حالا الان دیگه با های این حاج آقا خیالم راحته حالا چند وقت دیگه الیام قرار بیاد به عنوان کاراموز اینجا همکارمون بشه لا اقل دیگه به علی دیگه تعارف نمد بکنیم دیگه والله به خدا ولی شما تصور کن چقدر هاجاقا حال میکنه با خودش فکر کن نشسته کلی هم غذا و میوه و شیرنی جلوشه داره میخوره یه خانمی هم از راه میرسه بله ولی بله توجهی نمیکنه که ایشون هم دور از جون مثل چی خوردن و ادامه میده بخوردن خوردن می محل نمیذاره چون تعرف خوردنی به خانمها گفتن این هاجا گفتن جایز نیست آقا به خدا یه گربهم موقع غذا خوردن میاد از آدم رد میشادم یه بفرمایی میزنه دیگه پیشته پیشته پشت ها ماسه دیگه ای بابا بله یعنی اینا میخوام بگم خانم در حد گربه هم نمیبینن اما گوش کنین به سومین بخش که از همه آموزند... آموزنده تره و نکته اخر است که فرمودن اگر خانمی در جای نشسته بوده بلند شد رفت حالا تو خونه تو ماشین جای دیگه فرمودن کراحت داره که انسان جای اون خانم بشینه مگر اینکه مدتی گذشته باشه و اون جای نشستنش سرد شده باشه بعد از سرد شدن اشکاری نداره بله یعنی دیگه فردا میخوای بری سوار تاکسی بشی میبینی مثلا یا خانومی پیش پای شما تازه پیاده شد بله این باید اه... یه باد بزن بگیری دسته شروع کنی باد زدن صندلی که جای نشستن و سرد بشه بد بشیلی یا مثلا باد بزنم نداشته باشی بعد شروع کنی فوت کردن صندلیه که خونک شه دیگه خودت تصور کن چه وضعی میشه وسط شلوغی و ترافیک صندلی باد بزنی مورد داشیم حاجاقا داشتن میرفتن برای نماز جماعت و تو تاکسی سهوان جایی که کاملا سرد نشده نشستن مجبور شدن دیگه از وسط راه برگردن قوز کنن دوباره برن دیگه افکت صدای حاج رو نداری؟ سامین موقع نشستن در جایی که هنوز کامل سرد نشده؟ هایی چی بی خیال بخش خانواده نشسته؟ بلش کن. دیگه همین دیگه شما تصور کن قشر روحانیت با چه مسائل و مشکلاتی توی زندگی دست به گریبانه؟ فری غریب سلام سلام سلام به همه گی امیدوارم یه ریکاوری خوب همه کرده باشم بعد از شب گلده امیدوار ما که هنوز نکردیم ولی دیگه بعد امشبی شالا میریم ریکاوری فری چی شد این مصاحبه عادل با آقای زریفت پخش نشد که گفتی شب آره اصلا پخش نشد که ایچی از چند ساعت قبلم زمزمش بود آخرین خبر یه چند دقیقه پیش فرشید اومده روز سایت اقدام صد استنیما چیز داده اطلاع داده اقدام فردوسی پول بدون همانگی بوده اصلا اصلا چی گفته آقای ظریف باکیه صحبت کنه پگیری هم خواهد شد تو فضای مجازی هم تشید خیلی اسب داشته سانسور به این بزرگیو و جلو چشم همه خبر ها نوشته یه شکست فجیح بود واسه کشور خدا آقای ظریف هم انگار واکنش نشون داده آره تابناک نوشته آقای ظریف پیامک فرستاده واسه آدر ازش خودش رو ناراحت نکنه درگیر نشه اصلا عادل هم از همه معذرتخایی کرد روی آنتن زنده دی شب خبرانان در ادامه‌ی اون مطلبش که اول بهش اشاره کردن نوشته یه موج رسانه‌ای از جریانهای سیاسی که خودرو دلواپس اوضاع کشور میدونن مانع پخش مصاحبه شدن عجب حالا با این وضع که پیش میره هیچ بعید نیست همین آقای ظریف هم چند وقت دیگه حسری بشه یا حالا ببینیم چی میشه دیگه چه خبر؟ فری بورز. یه سوه قصد جانی ورزشی هم داشتیم فرشی امیر کلاه دوز دوچرخه سوار ملی پوش ایران و تیم پتروشینی تبریز به سیما گفته بعد از اینکه تیم باشگاهیشو عوض کرده اصلی همتینیاش بین مسابقه به هش قصد شده بشنمیم صدای خودشو بعد تذکرات کارای خواستم بکنم که منو بزنن زمین واقعا دو چرخ سایه ورزیش خطرناکیه اگه نفری که جلوتون اسیا بغلتون اس یه حرکت ویراژی داشته باشه شما به راحتی می‌تونید بخورید زمین و ارتباط بعدی بهتون این کارا روی ری بالا کردن خوشبختانه من نذاشتم یعنی بخونم زمین نای سهرابی که واقعا بی‌توجهی می‌کرد تذکرات 5 بارم تکرار کردن فرهاشینشون مرتبا هر روز ادامه دادن دیگه بعد رسما اعلام کنیم تو لیان شامپو به سر می‌بریم دیگه خدا به <تصفيق> فری برش پرونده ورزش هفته رو ببند و بریم تا شنبه پرونده ورزش رو فرشی جان با فینالیست شدن تیم جلال میبندن تو جام هستی آبیا امروز تو تبریز تو نیمه نهایی هستی دویک چراکتر رو بردن برای قهرمانی باید با زوباهن و اسفحان بجنگن به اما هاشی مهم بازی امروز فرشی توهین و فهاشی تماشاگره بود تو ورزشگاه که برادرای پخش چند بار مجبور شدن نیکروپون ورزشگاه رو قطع نیکروپون حتی حبرگزاری ها نوشتن که به منصورخان پورهیدری سرپرست استقلال که الان تو بیمار راه نکردن کردن به اون کلی بدبیرا و توهین کردن عجبال ناراحت نباشی شاله مثل زمان عوض محمود فرنگسازی رو کم کم شروع میکنن همه چی درست میشه دیگه بله اینم یه حرفی ممنونم از ادفری برز غریب باید می کنیم تا شنبه. تا شنبه خدا نگهتر بدین وسیله پیروزی بزرگ کل کشور. در جلوگیری از پخش مصاحبه وزیر آمریکاوی خارجه محمد جواب ظریف با مجری آمریکایی برنامه نود، عادل فردوسیپور را به همه اخشاب مؤمن و انقلابی تبریک گفته به همه نفوذگران یادآور می‌شویم دلواپسان در کل کشور تکثیر یافته در همه ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی از رهبری تا درمانی حاضر می‌باشند و جلوه هر گونه نفوذی را در همه زمینه‌ها میگیرند. در ضمن مکان و زمان مراسم تقدیر از دلواپس بزرگ برادر محمد سرفراز رئیس نفوظ ناپذیر صدا و سیما به خاطر این همکاری بزرگ متعاقبا اعلام خواهد شد معاونت ضد نفوذ سازمان دلواپسی کل کشور با سلام بستویک سه سهشنبه شب را ضمن نگرانی از انتشار خبر آغاز فیلترینگ هوشمند تلگرام در ایران با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز نماویم حمله شدید صادق لاریجانی به حسن خمینی و باقی جناح های رقیب و سوال کارشناسان که چی شده آقاشون حاج صادق از پست دروازبانی در قوه غذایه برده گذشته فروات که ای چپ راست حمله میکنه بینون اظهار نظر محسنی ایجهی سخنگوی قوه غذابیه مبنی بر اینکه فشار فشاب بر قوه غذابیه بسیار شدید است و توصیه کارشناسان به وی که تا قویه قضایی زربگیری مس شما داره اصلا جایی هیچ نگرانی نیست و دو برابر شدن بدهی دولت و شرکت دولتی در طی یک سال گذشته و تبریک فعالان عرصه بدهی سازی به دولت اصلا روحانی بابت این پیشرفت شگفتا و مهمترین اناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند اینک مشروح خبرها با چهچهی همکارم بل بل با سلام. سخنگوی سازمان سبت احال با بایان این که در هر ساعت 18 طلاق و روزان 443 تلاغ در کشور به ثبت می رسد گفت بیشتر این تلاغ سبت شده در نومای این سال مربوط به مردان 25 تا 29 سال و همچنین زنان 25 تا 29 سال بوده است در همین رابطه یکی از کارشناسان به خبرنگار ما گفت سبت هجده طلاق در ساعت نشان دهنده آمار اشتغال بالا در کشور بوده با توجه به اینکه طبق این آمار در هر چهار دقیقه یک طلاق در کشور به سبت می رسد می توان محاسبه کرد که برای دفاتر طلاق قنادی دریافت کننده سفارش شیرینی برای جشن طلاق و شرخرهایی که برای پول کردن مهریه ها و نفقه ها سفارش می پذیرند تا چه میزان اشتقارزایی ایجاد می شود؟ پایان من شروع اخوار اه واقعا که چقدر ترسنا که این رو آه چیه بلبل ترسیدی دکتر طلاقت بده نا قدر. دکتر من که این کاره نیست من میگنون جامعه هم آه از اون لحاظ الان ببین تو جمع پسرا یه جوری شده بلبل وقتی میگی من هنوز زنم و طلاق ندادم همه با نگاه بدبخت بیچاره بهت بد نگاه میکنن. واقعا بوست تأسفه. علی تو من واقعا به خودم افتخار میکنم. ای میکروفون طلا که اینقدر به خانواده پایبند هستی. بول بول من که تنها باقی مونده از یک نسل استثنایی نجیبم دیگه. این بچه مچه‌ها رو با من مقایسه میکنی آخه بول واقعا فهمی <صحیح> شما. هی دکتر دکترتو بیا من یه دو باید نجابت و وفاداری بهش ترجیح کنم. نه اونم راه نیوفته اون. خود مدرن نکنه دکتر خود فوتا به درسشو. من برم دیگه. شب خوش. بله بله باشه بله با باشه ما که هر کلکی زدیم نتونستیم این دکتره تو رو ببینیم کلن پشت پردست های دکتر اصلا نمیدونم اصلا دکتری هست نیست ما رو اسکول کرده این بل, بل چی؟ الان من تحتیش در بل. بله باقا تشکر توجهی شما تا دیگر و برنامه دیگر و بل, بل دیگر خدا نگه داریم راجب درد سرهای شب حرف میزنیم و راجب چه میدونم بیخابی را بیخابی حرف زدیم راج به های بیرونی بیخابی صحبت کردیم که ممکنه سر وصدای همسایه ها و اطراف ها باشه بریم سراغ منشه درونیش بعضی بیخوابیی ها منشای درونی داره یعنی عامل خارجی باعثش نمیشه و طرف کلا با خودش درگیره و شببا خوابش نمیبره. برای غلبه به مشکل اینجور بیخوابی ها مختلف و متنوی پیشنهاد شده که قدیمی ترین اون شمردن گوسفنده حالت از اونجا که خب بعضی ها خب بیاه خارن کلان با گوسفند مشکل دارن میتونن به جاش مثلا کلمبروکلی، حویجی، کرفسی چیزی حالا اینا رو بشمارن دیگر چی دوست دارن ولی نه شوخی میکنم چون این روش بابا هیچ وقت جواب نداده هیچ وقت هم جواب نخواهد داد از اولم احتمالا برای سرکار گذاشتن نمیدونم کسی بوده بچهی بوده چیزی برای مطرح شده به مرور زمان جدی گرفته شده ولی روش دیگه که خیلی توصیه شده برای مقابل با بیخابی یا بدخابی خوردن غذای سبک برای شامه که البته خب این روشم هم لاقل برای من یکی که میشه نتیجه معکوس داشی یعنی هر وقت شبا میخواستم از این افعایه مثلا قضا سبک بخوریم و اینا بیام آقا تا خود صبح من ده بار بلندشم برم سر یخچال یه چیز بذارم دلم زفت نره یا اگه پیدا نکنم چیزی چیز صبح با یک دلغشه بیدار میشی که بیا ببین اما یه رای دیگه هم برای غلبه کردم به بی بیخوابی هست و اون استفاده از د که متاسفانه دوز بعضی از اونها انقدر بالاست بیشتر داروی بیهوشی برا تا بهشون مثلا بگیم قرص خواب طرف بعد از خوردن بعضی از این داروها هم میره تو خواب که عملا میشه روش عملیات جراحی قلب بازم انجام داد طرف بیدار نشه اصلا به حال یه دگی برای غلبه بر این معضل بزرگ شبانه یعنی بیخوابی به یه چون این چنین راههایی رو میارند دیگه که خب خیلی هم خوب نیست معلومالانه اخر خوشی نداره این نگرانی ما از خود آدمیست آدمی است که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشند کامران ملک موتی سلام سلام فرشچیان سلام همگی خب دیشب قرار بود می‌خواستیم ای شد دوباره بود برگزار دیگه فرصت نشد بریم پرورنده خبرهای هنری این هفته را هم ببندیم باشه بریم ببندیم با خبر اکران شدن فیلم P 22 ساخته حسین قاسمی جامی که از فردا نمایش شروع میشه بخشی از صدای فیلم رو نمی‌دونیم بعد من راجبش بیشتر توضیح میدن بیش This is commander officer of Iranian, you to keep clear from now. Iranian A to خلیج فارس و استعیاض جوشن خودم خدا میکردم که درباره‌ی یه نباشه هر می‌کرد. باباص جنگ تموم شده به خدا تعمولی کابوسی دیگه رو ندیدیم تو جای برادر من میدونم خدا خیلی دوستت داره بخشی از صدای فیلم پی دو رو شنیدیم ساخته حسین قاسمی جامی جا داستانش چی بود صدای امین حیایی من شنیدم انگلیسی حرف میزد اولش طنز کمدیه آره نه فیلم یه فیلم جنگیه بازیگرای اصلیش هم امین حیایی هادی سائی خودمون که هم شوره شهر هم بازیگر هم کاراته میزنه به موقعش اینا افسانه بایگان نسیم مقالو هستن همونطور که گفتم فیلم از فردا اکران شروع میشه اما فقط بهش یه سالن نمایش دادن تو پاردیس سینما یه کوروش این تغییر کننده فیلم به فامیلاش نشون بده تو خونهش بلیت بفروشه که بیشتر در <تصفح> آره الان فقط اکران میدن اینجوری که فیلم ها فقط گفته باشن اکران شده و اینجور جور و کسی گلگی نکنه عجب خیلی خوب آقا یه مطلب جامونده از زرم دیشب دارم هی میاد نگم بگو بگو آره چی بوده جامونده بود دیشب آره, آره فاش چون از خود ایران شبه هم یالو که توشی هاشو گرفته میشه این مثلا تو افغانستان تاجیکستان جمهوری آذربایجان و منطقه سینکیانگ چین هم برگزار میشه اما تو این سال میلادی کی روزهای آخرش رو می‌گذرانید از طرف ایران شب یلدا برای ثبت معنوی پروندش توی یونسکو شده نامش رو فرستادم ولی فعلا خبری نیست که نیست باید نیست بازم اینقدر دست دست کنن مثل تار که به اسم آذربایجان ثبت شد شب یلدا به اسم آذربایجان ثبت بشه شاید هم اون شهر تو چین سین کیانگ که گفتی تو چین اسم اون ثبت چه مثلا یه دفعه آره اون وقت فقط حافظ شاهنان خونی به چینی یک کم مشکل میشه شب یلده کرده نه برای من و تو بسید دیگر رو ناروزی میکنم آره ما که چینی فول آفوزی با از ممنونم از زدت از یادآوری بابت برگزاری مراسم شب یلده تو کشوره افغانستان، تاجیکستان و سینکیانگ چین جمهوری آذربایجان جان خدافزی میکنیم با تا شنبه شم... ی هفته آینده و یه آهنگ شب یلده رو با صدای امی اگر شب ها شبیل اگر روز پر از غم بود قناعت بود و صبری بود اگر بسیار اگر کم بود همو شب ها همو قابل برای میسیولم بود تو بودی در کناری من دیدینم اینم جانم اینم جانم وای دلم خانم آقای این دختر خانم آقای پسر و یک از بزرگترین معضلات شب برای بعضیا کابوس‌های شبونه‌ای که سراغشون میاد یعنی عده‌ای هستن به معنی اینکه چشاشون رو هم میذارن از خواب نیمه عمیق یعنی از عمق نیم متری وارد خواب عمیق یا همون 3 4 متری میشن با اموا و اقسام ها و اجنه و ایوانات و درنده و گزنده و خزنده و اینا ملاقات میکنن کلاً توی خواب همش در حال فرار کردن هستند. از اونجایی که آدم همیشه توی خواب، هرچی دست با دست با تر از بیداریه، اصولا نمیتونه درست حسابی هم فرار کنه. اینه که آقا دائما به جنگ این جک بجونن برایی که گفتن میفتن و عرق ریزان و فریاد زنان از خواب بیدار میشن. بعضی هم نه این که تو زندگی واقعی روزانه‌شون کم مشکل بدبختی دارن، به محض اینکه آقا چیشو میذارن رو هم ادامه بدبختیادشون رو به توان صد البته تو خواب می‌بینن. کلاً دنیای خواب اینا از این فیلم هندی قدیمی‌ها هست. از اونا بود که همش اشک و و ناله و و و ایناست. حالا یا چم دام زلزله میاد همه زیر آوارن یا تو جاده با پراید کل خاندان میرن زیر هیچ درچخ یا عشقشون داره بهشون جلو چشمشون خیانت میکنه دیگه از این داستان ها دیگه حالا اینکه چرا اینا دنیای خوابشون انقدر ترسناک یا سرد و سیاهر رو ما نمیدونیم فقط همینقدر میدونیم که یه شب مثلا کنار اینا به خوابی آقا تا صبح صد بار باید با نرهای های جانسوز و گریه های جانفرس های اینا از خواب بپری بعد بری بالا سرشون هشون رو ماساج بدی بگی باید بای نترس بابا جون نترس خواب بعد دیدی به خواب عزیزم به خواب خوربونه اشده بکپ بذارم ما هم کپمون رو بذاریم دیگه از اینو رو دلت میگی دیگه این هم بالاخره یه موزل شبانه <متحد> راستش من خودم هیچ تجربه ترس در شب نداشتم ندارم نه تاریکی نه کابوس نه بیخوابی اما این مریم دوستم همه اینا رو با هم داره و منم با خودش شریک میکنه هر بار یعنی به مورد ترس از تاریکی شب که با چرا خواب حل شده به هر کدوم دیگهشون که گرفتار بشه زنگ میزنه به من و خب نگفته معلومه که وقتی از کابوس یه از خواب یا وقتی بیخاب شده به آدم زنگ میزنه یعنی من از دست مریم شبانه به شب ندارم دیگه. جوابم ندید صبح سعی میزنه بهت غر میزنه که تقصیر توی خوابم نبرده. بس که فکری بودم چرا جواب تلفنمو ندادی. دیشبم تازه خوابم برده بود که با زنگ تلفن از خواب پریدم. گفت بیدارت کردم ببخشید ولی یهو یادم افتاد به شب یلدا رو تبریک نگفتم. گفتم مریم جان تموم شد که. گفت هنوز جریان داره تا صبح بشه همچنان ترین شب سال الان. گفتم باشه مرسی. حالا میشه برم بخوابم؟ گفت بیا یکم شب تلفنی داشته باشیم یعنی تو امشبم هم که شب اینقدر طولانیه بیخواب نمیشی؟ گفتم نه و گوشی رو گذاشتم آخه وقتی یک هوا تون رو داره به وقت ترس های شبانه دیگه انقد اذیتش نکنین بذارین به خواب انرژی داشته باشه باز هوا رو بداره والا روزنامه، روزنامه امروز موسیقی روزنامه اطلاعات به نقل از آقای روحانی در بازدید از ستاد انتخاباتی کشور امروز تیتر زده بود ایران نخستین کشور منطقه است که با رأی مردم اداره می شود میگن تو شهر کورایی چشمی پادشای هم اینا دی ببین اوضاع منطقه چیه که حکومت ولایت متقی فقی تازه در مردم سالاری توش اول شده باریکاله با واقع. روزنامه رسالت به نقل از سید مهدی موسوی نجاد نماینده دشتستان امروز تیتر زده بود که آلودگی هوا نشان میدهد که بنزین مصرفی یورو چهار نیست والا با این آلودگی بنزین مصرفی یورو چهار که چه کنم درغوز تپه دو هم نیست والا و روزنامه روزان به نقل از آیت الله خامنه ای امروز تیت زده بود که توجه به شعر منافاتی با مقولات مهم حوضه های علمیه ندارد البته بگم بستگی به شعرش هم داره ها معظم له وقتی میگن شعر بیشتر استاد علی معلم شاعر ارزشی و ولایت مدار خودشونو مد نظر دارن بله تموم شدیم امشب هم تموم شدیم راستی امروز اولین روز زمستون بود و امشب اولین شب زمستونیه درسته که زمستون فصلی نیست که اومدنش انرژی و زنده بودن بهار رو به خودش داشته باشه یا فصلی نیست که مثل تابستون گرما بده و زندگی ببخشه زمستون حتی مثل پاییزم نیست که بخواد برامون با رنگش قصه ها بسازه زمستون فصل سرماست فصلی که ما رو به خودمون بشارت میده به اینکه برگردیم نگاه کنیم به اون چیزی که از خودمون به جا گذاشتیم شاید دستایی که از سرما توی جیبها پنهان شدن شاید گردن‌هایی که سرما وادارشون کرده که دیگه برفراشته نباشند، نیاز داشته باشن به بهره بردن از این خاصیت زمستون و شاید به همین دلیلن باشه که این روزها به قول اخوان بزرگ سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت سرها در گریبان است شبتون خوش، زمستونتونم گرم گرم سلامت را پاسخ کن سرها در گریه بمانم جز بشه بارادت متوانم چرا صدای خلوصانم از گ انگ سیین میهیت بروابری می شود تاری در پیش چشمهاند نفس کی است پس دی دیگر چه داری چش زه چشم, چشم دوستستان دوریا نزدیک زمستانه؟ آواز نجوان مردان سردار آیار دست محبت سوی کسی آذین اکران